تپه به قندی شبیه بود که سر آن را با قند شکن پرانده باشند. رویش صاف بود. بام چند خانه به آن تکیه داده بود. اهالی ده با لباسهای تازه و تمیز و سر و رویی که سعی کرده بودند آراسته باشد روی تپه جمع شده بودند و به طرف قبرستان قدیمی نگاه می کردند. قبرهای تازه از تپه فاصله داشتند. پایین دست به سنگ قبرها که صاف بودند و شاخص، بقیه قسمت‌های قبرستان با سنگ های ریز و درشت مشخص می شد. لابلای قبرها علف های خود رو رویده بود. علف ها حتی بعضی از قبرهای قدیمی را هم پوشانده بودند. مثل اینکه چند نفر از ریش سفیدهای های بنفش در هنوز نیامده بودند. جوانها از بیکاری و انتظار حوصله‌شان سر رفته بود. به همین خاطر تنور تخم مرغبازی داغ بود، آنها در دسته های چند تا این گرد آمده بودند و دو به دو کله تخم مرغهایشان را به هم می زدند بقیه یا تماشاچی بودند یا منتظر بازی تا نوبتشان برسد دو حریف تخم مرغهایشان را در مشت می فشوردند و تنها قسمت اندکی از پوسته سر آن دیده میشد در همان حال با صدای بلند با هم حرف می زدند بخواب نه اول تو بخواب رنگی دفعه پیش من خوابیدم حالا باید تو بخوابی غلط کردی دروغ نگو تو تا حالا نخوابیدی زود باش بیا بخواب بابا اون دفع من دفعه من خوابیدم به جون این مرده ها من خوابیدم چند دفعه باید بخوابم بی خود به جون ها قسم نخور با زبون خوش بخواب خیلی خوب بیا حالا که دنیا دنیای نامردیه من میخوابم آها بزن و با دست لرزان تنها نوک تخم مرغش را نشان داد نخی قبول نیست من تخم مرغ تو نمیبینم بیشتر باز کن بیا اینم بیشتر بازم بیشتر اینو نگاه کجا بزنم آهان بابا بیا از این بازتر خب این شد یه چیزی تکونش نده بعد تخم مرغ را بالا برد و درست روی سر تخم مرغ حلیف میزان کرد تماشاچی ها با دقت نگاه می کردند در یک لحظه سر دو تخم مرغ به هم اصابت کرد چرق یکی شکست هر دو با تشویش تخم مرغ هایشان را نگاه کردند کسی که تخم مرغش شکسته بود بازنده بازی بود باید آن را به حریف میداد و تخم مرغ دیگری از جیب در میآورد تا شاید با این یکی شانس بیاورد. کم کم بزرگان و ری سفیدهای ده هم خودشان را به بالای تپه رساندند. همه یک جا جمع شدند، اسماعیل و سلطان پیش هم بودند. هرکس می رسید دستی به فرمان یا زین دوچرخه سلطان می کشید و یک چیزی میگفت و بدتر از آن را میشنید و راهش را میکشید و میرفت. مردان بنفشه در رنگار که برای اولین بار بود دشت را میدیدند. آنها با دقت به مزرعه خود چشم دوخته بودند و از برف زمستان و احتمال باران بهار میگفتند و در مورد کشت بهار نظر میدادند. آخرین نفر مرد میان سال ریز جسه ای بود که هننا هنکنان خودش را از تپه بالا کشید خودش شلوار سبز پوشیده بود با پیراهنی زرد و کراوات قرمز رنگ که از بس بلند بود تا پایین نافش می رسید. کلاه لبهدار شیری رنگی را کج روی پیشانی گذاشته بود. مقداری از موهای بلند و جوگندمی از کناره های کلاه بیرون زده بود. وقتی بالای تپه رسید، ایستاد و نفس نفس زد و گفت: نمیدونم چرا اینطور شدم. من که به این زودی ها خسته نمیشدم. ایماش هم که هم سال او بود با کنایتی گفت: پیر شدی دیگه سرخان، قبول کن. اسمایل کنج کاف شده از سلطان پرسید. کت خدا همینه؟ آره، سرخان، خودشه. شوهر خال سفورا؟ آره، بابا، به قیافش نگاه کن. این جماد و تشنه میبره لب رودخونه و برمیگردونه. از بس جلب این سرخان. یکی از پیر جلو آمد و رو به قبرستان ایستاد و اول از مردم خواست، برای آمرزش روح هموات نفشه در وفاتحه بخوانند و بعد آنهایی را که سال گذشته درگذشته بودند اسم برد و برایشان آمرزش طلبید. بعد برای آرامش روح ها از هزار صلوات گرفت. بعد اهالی از تپه سرازیر شدند و سمت روستا به راه افتادند. در شیب تپه ریس ها قرار گذاشتند اول به منزل کسانی بروند که آن سال عزیزی را از دست داده و عزادار بودند. بعد به خانه همسایه هایی که سر زمین و آب و این چیزها دعوا کرده بودند و هنوز هم قهر بودند و کاری بکنند که بزرگان دو خانواده دلخوری ها را کنار بگذارند و با هم آشتی کنند. گروه سوم ریس سفیدان و پیران ده بودند که مردم طبق رسم و سنت باید به منزلشان می رفتند و عید را تبریک می گفتند. آخر سر نوبت به بقیه‌ی می رسید. بازدید از خانه‌ی سه گروه نخوز طبق برنامه پیش رفت. اما وقتی ماجرا عمومی شد نظم و نسق از طرف بچه ها به هم ریخت آنها دست جمعی جلوتر از بزرگترها خودشان را به خانهها میرساندند و سر سفره یک اید می مینشستند و نقل و شیرینی میخوردند و بلند میشدند و باز هم دست جمعی به خانه همسایه دیگر میرفتند بعد از چند بار عید دیدنی تشنشان میشد دوان دوان خودشان را به چشمه میرساندند چند قلب آب میخوردند و دوباره خانهگردی را شروع میکردند سلطان از اسماعیل جدا شده بود و با جمع بچه ها به خانه ها می رفت. فاصله دو خانه را سوار دوچرخهاش می شد و بچه ها هم با اسبهای چوبی خیالشان پشت سرش می تاختند و شیهه میکشیدند و به سوی خانه بعدی حمله می کردند. بزرگترها دست کمی از بچه ها نداشتند. رفته رفته شتابشان بیشتر می شد. تند راه می رفتند. انگار که تابوت مرده ای را روی دوش به گورستان می بردند. و عجول وقت ورود به خانهها هم به هم تنه میزدند كفشهایشان را تاغ یا جفت و حتی روی کفشای هم دیگر در میآوردند و هنوز ننشسته و درست و حسابی احوال پرسی نکرده از سر سفره بلند شدند تا به سفره دیگری بروند برای اینکه از كوچهای به کوچه دیگر برسند ناگزیر باید از روی دیوار مخروبهٔ کوتاهی عبور میکردند جوانترها و سبکترها به راحتی میگذشتند اما میان سالان و پیران مشکل داشتند پاهایشان سخت بالا میآمد یا اصلا بالا نمیآمد با این همه باید از روی آن رد می شدند تا به کوچه دیگر و خانه های دیگر می رسیدند. جوانترها از پیران و معمرین دستگیری میکردند تا از روی دیوار کوتاه مخروبه عبور کنند. سرخان جلو اسماعیل بود با همان کتکاهی که او را مشخص میکرد. یک بار وقتی خواست از روی دیوار بگذرد پایش گیر کرد و با همون ریخت و لباس، افتاد توی تاپاله های نرم و سرگین های خیص همسایه که برای خشک شدن پای دیوار پهن کرده بودند. پشت سری با همان شتاب از کنارش می و با کنای چیزی می گفتند و میرفتند. تنها اسمایل مان بالای سرش. سرخان به زحمت از روی تاپالا و سرگینهای های خیص بلند شد. از پا تا به سر آغشته شده بود. با دستهای آویخته و پاهای گشاد مستاصل ایستاد و به ریخت خود نگاه کرد. کلاهش هنوز روی زمین بود. اسماعیل آن را برداشت و آلودگی‌هایش را تکاند و به سویش دراز کرد. سرخان با چشم‌های سرخ و برافروخته به تلخی نگاهش کرد و گفت: "بزار سرجش و گردن کشید به طرفش و سر سرگینیش را پیش برد. اسماعیل کلاه را گذاشت آنجا. سرخان با تعجب نگاهش کرد. من تو رو دیده بودم نمیدونم بالای تپه بودی یا الان اومدی اون بالا بودم کجایی هستی اینجا نوهی مشمدی نم آها پس خوش اومدی پدرتو میشناختم همسن و سال بودین چه عجب این طرفا اونم این وقت سال همینطوری اومدم خیلی وقت بود به مادربزرگ سر نزده بودم شنیدم دانشجویی چقدر مونده تموم بشه نه دانشجو نیستم سرخان در خودش را لرزاند و تکاند و کمی از درگین ها و تاپلاها را به اطراف ریخت وقتی جوونی به سن و سالت و ریش و پشم میذاره همه فکر میکنن دانشجوه برو به تراش بریز دور من پدرتو میشناختم آدم خوبی بود وقتی بکنم چشم آره اینجوری شک میکنن یه دفعه دیدی افتادی دو درد سر و بعد تازه مثل اینکه یادش آمد که خودش در چه وضعیتی است گفت «اهه آه ببین چهریختی شدم. دور از جناب یه مش خر یه مش اولاق جمع شدن تو شده دره. نه حرف زدم بلدن نه معاشرت سرشون میشه. اونقدر بدبختن که از تقسیم یه من جو بین چند اولاق آجزن. از صبح تا شب مثل سگ و گربه به هم میپرن. منو بگو که چند سال اومدم به این خراب شده و عمرم و تلف کردم. حیف. حیف. چند مرغ و خروس که با هجوم جماعت گریخته بودند دوباره آمدند و مشغول به هم زدن ها و دانه برچیدن از میان آنها شدند. سرخان باز هم خود را تکاند. به کتو که دست کشید، با سراستین صورتش را پاک کرد و آخر سر حوصلش سر رفت. تف و همه چیزتون هی hey, چشم دیدن یه آدم تمیز و مرتب و تو این خراب شده ندارین. تف. و بعد راه افتاد. گشاد گشاد میرفت. مثل بچه هایی که خودشان را خیس کرده باشند با بیمیلی و اکراه قدم بر می داشت اسمایل پرسید من خیلی حواسم نبود اصلا چطور شد شما یه دفعه افتادین؟ پاتون لیز خورد یا اینکه که؟ په. پای من لیز بخوره پای من بلرزه سرخان از دیوار صاف بالا میره. یعنی حالا اینقدر ذلیل شدم که از دیوار یه متری نمیتونم بالا برم؟ میرم. خوبم میرم. حالا هم رد شده بودم اما نمیدونم کدوم ولد زنای از عقب خودم داد و انداختم زمین حیف که ندیدم اون هم توی همچین جایی؟ بله بله توی ی همچین جایی که آخه آدم چی بگه؟ از کجاش بگه؟ عجب آدمای یعنی نا. منو بگو که صبح تا شب به فکرشون بودم خواستم براشون همون درست کنم گفتن همون میخوام چیکار؟ تو تویل خودمون رو با یه آب میشوریم. گفتم برق براشون بیارم گفتم برق برای چی؟ خودمون چراغ گردسوز، سوز چراغ زنبوری و چراغ موشی داریم هر وقت هوا تاریک شد یکیش روشن میکنیم اگه هم خواستیم بریم و آفتاب برداریم فانوس با خودمون میبریم خواستم براشون جاده ماشین رو بکشم و آسفالت کنم گفتم ما از همون راه های مال روی آبا و آب خودمون میریم و جاده و ماشین نمیخوایم به پدرتون هی hey, دیگه یکییه از دور صدای گفت و حالی میآد سرخان آهسته و گشاد گشاد راه میرفت به هیکل خود نگاه می و دم به دم های رکیک و آبدار می کشید به جان عالی که هیچ کدام حاضر نشده بودند بمانند و دستی کت خدای خود را بگیرند و از لای تاپاله و سرگین بالا بکشند و کمکش کنند. همانطور که لنگرنداز آهسته پیش می رفت گفت راستی اسم تو نمیدونم اسمایل هستم اسمایل بگو ببینم از تهران چه خبر؟ شنیدم ملها سر بلند کردن خب تند تون داره اعلامیه میده من از این چیزا سر در نمیارم بیخبرم سرخان از گوشه چشم نگاهش کرد و لبخنزه په من خودم منبع خبرم اون سر بنافش در رو مگه از فر بزنه من این طرف با خبر میشم نمیخواد سر من کلاه بذاری یعنی نمیتونیم تو این ریشو برای خوشیلی نذاشتی. سرخان یه پا ریش شناسه مگه هرکی ریش داشت خلافکاره؟ برو برو نوه مشمدینه به من میگن سرخان نه برگ چغن من هر روز تا رادیو اسرائیل و بی بی سی گوش نکنم محال ممکنه تو رختخواب خواب برم سرخن اینطوری نبین من یه زمانی صدر دموکراتای های دهات اطراف بودم چند سال تو قفقاز گشتم مدتی تو تهران موندم خلاصه تو هر فرق که تو حسابشو بکنی بودم برای همین حتی هم به قیافه طرف نگاه کنم میفهمم از چغ پس چی؟ از قدیم گفتن زیر کاسه دو دوتا هم میشه چهار تا. حالا راستشو بگو تو تهران چه خبره؟ خبر که سلامتی چند وقتی تهران نبودم. اه، پس کجا بودی؟ همین اطراف. برای چی؟ همینجوری. همینجوری که نمیشه. مگه آدم دیوونه باشه که تو این سرما راه بیفته تو جده ها و این شهر و اون شهر بره. من تا حال شهرهای اطراف سبلان رو ندیده بودم. فقط تعریفشون رو شنیده بودم. خیلی خوب بودم. این حرفا رو بلش کن بگو ببینم تهران چه خبر شنیدم مردم از بس خوردن هار شدن و خوشی زده زیر دلشون بهشون بگو خیلی خواستن یه کارایی بکنن اما هیچ غلطی نتونستن بکنن شما انگوش کوچیکه‌ی پیشواری یا قلام یحیان نمیشین اونا چی شدن هیچ چه پوچ آقا سرخان شما جدن یه سیاستمدار درست و حسابی هستین اگه پای پایتخت میموندین الان تو وزارت امور خارجه بودین شاید سفیری چیزی حیف که افتادیم تو این دهه پرد. سرخون چند بار خود را تکان تا شاید از دست سرگین ها خلاص شود ولی نتوانست. اوقاتش تلخ بود. اینا هنوز قدر منو نمیدونن. نمیدونن که همیشه زیر کاس نیمکاسه هست. است. پشت اون ریشی که تو گذاشتی نقشه ایه. بازم که شما بند کردیم به ریش من. آهان، حالا ملتفت شدی. یه زمونی مشکل ما سبیل بود، حالا شده ریش. برای اینکه همیشه زیر کاسه نیمکاس است و من ختم روزگارم و از همه اینا خبر دارم. سرخان مقابل خانه‌ی توقف کرد و گفت: حالا بفرمایید بریم خونه. سلامت باشی، مرخص میشم. به مشمدینه سلام برسون، بازم می‌بینمت. یادت باشه همیشه زیر کاسه, کاسه است. رفت توی حیات. اسماعیل به طرف میدان ده راه افتاد. در راه صفورا روبرویش در آمد با همان کوزه‌ای که روی دوشش بود تعارفش کرد. اسمایل بریم خونه چای بخور دست شما درد نکنه با آقا سرخان بودم رفت خونه سرخان از خودش حس آزار بر جای گذاشت و رفت طوری که دیگر مایل نبود را ببیند از رفتنش احساس رهایی آرامش میکرد قدم زنان خودش را به میدان ده رساند کسی در آنجا دیده نمیشد تنها شرشره صدای چشمه بود که توی حسجهٔ کوچک میریخت در همین موقع صدای جیغ دلخراش زنی سکوت میدان را شکست صدا از کوچه تنگ و باریکی که به میدان منتهی می شد می زن می نالید و کمک می طلبی. به دادم برسین به دادم برسین مسلمونا منو از دست این دیو خلاص کنین آهای مردایی بنفشه دره آهای برادرا بیاین به این بیغیرت بگین از جون من چی میخواد؟ اسماعیل به آن سو کشیده شد لابلای ناله ها و فریادهای زن صداهای دیگری هم می آمد. گویی کسی بر قالی شسته و خیز چوب میزد. تاپ، تاپ، تاپ پیچ کوچه را رد کرد. مردی زنی را بر زمین انداخته بود و با چوب دستی به پشت پهلوی او میزد زن روی خاک میقلتید و جیغ میکشید و فحش میداد. گاهی هم به التماس میافتاد و پاهای مرد را بغل میکرد. دختر کوچکی با موهای پریشان اشک میریخت اسماعیل گمان کرد مرد با دیدنش دست از کتک زدن برمیدارد و دیگر ادامه نمی‌دهد اما مرد دست بردار نبود با دقت و سنیق زنش را کتک می‌زد به نظر می‌رسید در این کار تجربه و مهارت خاصی دارد که بر اثر مدت‌ها تمرین و تلاش منظم به دست آورده پیشرفت و گفت آقا می بخشین شما جوری این خانم کوتک می‌زنید مرد نه نگاهش کرد و نه به حرفش اهمیت داد بلکه با حوصله کارش را ادامه داد آقا این کارو نکنین امروز عیده خوبیت نداره مرد باز هم حتی سرش را بلند نکرد که ببیند چه کسی آمده و چه میگوید دست از کارش نکشید اما زن وقتی متوجه حضور او شد جیغهایش بلندتر و دلخراشتر شد دختر هم با صدای بلندتری گریه کرد و اشک ریخت در همان حال از آن سوی ده صدای خنده و گفت و گپ میآمد اهالی با خوشحالی به دید و بازدید خود از خانه های همدیگر ادامه می دادند. اسماعیل نتوانست تحمل کند، جلو رفت و دست انداخت و یک سر چوب را گرفت و مانع شد. مرد کمر راست کرد و نگاهش را دوخت به او. پوست صورتش تیره بود، مثل چرمی کهنه و آفتاب سوخته، چروک و پر از جای آبله. چشمای کوچک و سرخی داشت، با پلکهای های بی تلاش کرد چوب را از دست اسماعیل پس بگیرد، اما نتوانست. دهان بیدندانش را برای گفتن حرفی یا شاید برای کشیدن فریاد باز کرد اما از میان لسه های سایده و قرمز رنگش به جای نعره مردانه صدای نازوک خروسکی لرزان شنیده شد در عوض صدای زن درآمد من از دست این شم نجات بده برادر و به پاهای اسماعیل پیچید و صورتش را به آن مالید تو رو خدا این حیوان منو بکوش بچم یتیم بمونه آن بالا میان دو مرد کشمکش ادامه داشت هر کدام چوب را به طرف خود میکشید و میخواست از دست دیگری در دربیاورد. مرد بیحال بود و کمبونیه. نمی به کشمکش ادامه بدهد کم آورده بود سرش را به سوی آسمان گرفت و دهانش را گشود و زوزه کشید. صدای لرزانی که میخواست در دور شنیده شود. شبیه به گرگ صدا در سر اسمایل پیچید تیره پشتش لرزید. چوب را از دست مرد بیرون کشید و به پشت بام نزدیکترین خانه انداخت و گفت حالا هی زرزر کن و زوزه کش. مرد سر خشم نیمتانهی کهنه را در آن را لوله کرد و کوبید به سینه اسماعیل با این همه خشمش نخوابید خم شد و به دنبال سنگ و کلوخ دستش را روی زمین کشید پیدا نکرد مشتی خاک و خاکستر برداشت و پاشید اما همه در هوا پخش و پود شد و بخشی از آن به سوی خودش برگشت در تمام این مدت دهان و نگاهش همچنان باز بود و از گلویش صدای زوزه لرزانی در میآورد. به طرف دخترک رفت بلندش کرد و انداخت روی تاپاله های کوچ شده بیخ دیوار جیغ زن به آسمان رفت چرا می کشی بی غیرت چرا؟ مگه از تو بیابون پیداش کردن؟ مرد زوزه کشان به هوا میپرید و دستهایش را نامنظم و نامرتب تکام در آن حال چند بار سرش را به تیغه دیوار کوبید کلاهش پرد شد، خون تیره ای از شکاف پیشانیش جاری شد، دستهایش را به خون آغشت و به طرف اسماعیل رفت و پنجه های خونها و لرزانش را به شکل تهدیدآمیزی آمیزی مقابلش گرفت و زوزه کشید. زن دخترش را بغل زده بود و سعی می کرد های او را خاموش کند، اما دخترک وحشت زده می گریست و اشک می ریخت. خاک و خار خاسک لابلای موهای گون مانندش رفته بود، در آن حال سر و کله مردی که آفتابه مسی به دست داشت از آن سر میدان پیدا شد مرد با پاهای به هم فشرده تند و تند قدم برمیداشت و به طرف خرابی میرفت زن خطاب به او فریاد زد ایامو اسحاق قربونت برم بیا اینجا و منو خلاص کن مرد نگاهش کرد و گفت ها بازم شروع شده خدا از بزرگی کمت نکنه یه کاری بکن سقط داشته باش تو هم مگه نمی‌بینی آفتابه برداشتم هی بیا بیا درآوردی طور به اون مسجد قسم حالا اول بیا اینجا اسحاق در حالی که آفتابش را در امتداد دستش تکان میداد به آن طرف آمد. مرد میان سال افتاده ای بود با عرقچین مشکی بر سر پوستی سفید و اندکی متورم و پاهای کمانی و از هم گشاد که ناگزیر با همان حالت فشارده و کوتاه کوتاه راه میرفت. خودش را به آنجا رساند و سر مرد داد کشید. خاک بر سرت غره به تو هم میگم مرد، آخه بی غیرد این روز عزیز همه دارن شادی میکنن تو این علمشنگر رو انداختی؟ برو بمیری دیگه چرا زنده ای؟ مثل سایه به سوی دیوار خزید و سرخورده چون نشست و در خود تا شد ها نباد بازم چه مرگش شده تموم کرده نداره بکشه؟ زن کف هر دو دستش را محکم به زمین کوبید و خاک برداشت و به آسمان پرتاب کرد و گفت ای خدا ای خدایی که اون بالا همه چیزو میبینی و میشنوی زود جونمو بگیر و خلاصم کن مگه من چه گناهی کرده بودم که حالا باید تقاس پس بدم اسحاق با بدخلقی گفت خیلی خوب تو هم. یکم حیا کن این همه جیغ و داد راه روز عزیز حالا چی میخواد؟ میخواستی چی بخواد پول پول منم نداشتم بدم ندارمم بدم هرچی داشتم دادم و حالا میخواد همون یه دونه بز رو هم بفروشه اگه بز نباشه بچم از دردش همین هم و اسحاق قربونت برم اسحاق پا به پا می شد معلوم است که تحت فشار است و نمی تواند یک جا بند بماند با این حال رفت و آفتابه را بلند کرد تا بزندش ناگهان دختر از آغوش مادرش گریخت و خودش را به پدر رساند و سر او را بغل کرد اسحاق روی برگرداند و دوباره به طرف خرابه را افتاد وقتی از کنار اسماعیل گذشت گفت ها خوش اومدی با عجله رفت زن دست دخترش را گرفت و برد خانه همان وقت سر و سرخان پیدا شد لباس عوض کرده بود این بار کاپشن آبی با شلوار جین پوشیده بود کلاه لبه گذاشته بود تصویح دانه درشت یاقوتی هم میان انگشت‌هایش میچرخید و چرک چرک صدا میداد وقتی چشمش به آنها افتاد داد زد آهای قره پاشو بیا اینجا کارت دارم قره‌کشی با دیدن سرخان سر از جا بلند شد و مثل مترسکی که باد ببرد به سوی سرخان دوید هر دو در پیچ کوچه گم شدند دیگر کسی نماند اسمایل به طرف میدان راه افتاد دچار نوعی دلمردگی یا اندوه شده بود انتظار نداشت روز اول سال با آن سحنه ها مواجه شود. وقتی وارد میدان شد چشمش به آن افتاد با سطل آب از چشمه به خانه می رفت. خوشحال شد با عجله خودش را به او رساند و همزمان با گفتن سلام دست دراز کرد و دسته سطر را هم گرفت. آنها وقتی دیدش گفت تویی؟ پس چرا زود برگشتی؟ برگشتن دیگه. بده برش دارم سنگینه. نه عادت کردم، خودم برمیدارم. اما اسماعیل دسته مفتولی و نازک سطر را چسبید و به طرف خود کشید. آنها ناچار رها کرد. اسماعیل برش داشت و افتاد جلو. نگفتی چرا زود برگشتی؟ سرخان زمین خورد لباسش افتضاح شد. موندم پیشش. با هم برگشتیم. خدا به زمین. با این زمین خوردنها طوریش نمیشه. اسمایل مکسی کرد و گفت. قیبتش نباشه. اصلا به دلم نشست. یه جوری بود. نچست. بیچار سفورا از چاله در اومد افتاد تو چاه. راستی چرا خاله سفور زن اون شد؟ آنها آه کشید. مجبور بود نور چشمم. زمینای نزدیک دریاچه مال سفورا است برادرای شوهر سابقش با پاسکا دست به یکی کرده بودند اونها رو از دستش در بیارن اون وقت خودش و دخترش بیچاره میشدن چاره نداره زن سرخان شد هم کت خدا بود هم دوست و رفیق رئیس پاسکا و هم زبون باز دختر خال سفورا بزرگه آره بدبخت حالا افتاده زیر دست سرخان از این طرف و اون طرف میرن خونش سریاک میکشن سفورا و سنا باید مثل کنیز به اون کسافتا خدمت کنن دیگر حرف نزدند آب توی سد لبپر میزد وقتی از کنار مخروبه رد می شدند، یک دفعه اسحاق از سر غذای حاجت بلند شد نتوانست خودش را بپوشاند دست دستپاچه شده بود آنها صورتش را به طرف دیگر برگرداند و با صدای بلند گفت اسحاق هم خوب چیزیه که تو نمیکشی چیه هر روز هر روز مثل آفتاب جلو آدم در درمیای اسحاق با صدای لرزان و فرو افتاده گفت مش مدینه. تو خودت میدونی که من نمیتونم خدامون دارم الان خیلی وقت اینطوریم. ام حیا کن به جای این حرفای چاله ای چاهی چیزی تو حیاتت بکن اون وقت خیر سرت بشین بالاش هر کاری میخوای بکن اینجوری هم تو زهره مارد میشه هم پیش زن و بچه‌ی مردم خوبیت نداره تو ریس سفیدی داری؟ حتما مش مدینه. حتما حالا این دفعه رو ندید بگیر الان میرم خونه چاه میکنن برو قبر بکن هر غلطی میخوای بکن هرکی با این روزهای بی نماز بزرگ شده باشه، بهتر از این نمیشه. اسماعیل پرسید، اونجا بوده؟ آره از بچگی اونجا بوده. زمان فرقه اومد این طرف شد صد سلدات حالا خودشو نمیتونه جمع جور کنه.